برنامی از گروه جوان و فرهنگ نام خالق افسانه و حقیقت سلام دلال ازدواج گفت شانگ عزیز چرا متوجه نیستی که از من چی میخوای ها؟ چرا باید دختری که پدرش صاحب مقام و مرتبه بالایی بیاد و زنی پیرمرد باغبون بشه تو اگه پولم داشته باشی موهای سفیدت با موهای سیاه اونجور در نمیاد نه, نه. ن نچنین ازدواجی مهال شانگ دیگه حرفشو نزن امکان نداره اون اونچه شنیدید بخشی از افسانهٔ چینی شانگ پیر بود که از گنجینه افسانه های مردمان سرزمین چین براتون انتخاب کردیم برگرفته از کتاب افثانه های مردم چین روشتگی فریدریک اچ مارتینز با ترجمه از عرفان حسنزاده امیدواریم این فرصت اینو پیدا کنید که افثانی کامله شنگ پیر رو بشنوید و لذت ببرید روزگاری مردی به نام شانگ در روستایی نزدیک گیانشوی کشور چین زندگی میکرد شانگ باغبانی سخت بود و صبح تا شب به گلها و گیاهان رسیدگی میکرد همسایه اون آقای سونگ صاحب مقامی عالی رتبه در منطقه بود که داشت تنها دخترش و شوهر بده به همین خاطر هم به یه دلال ازدواج که طبق سنت چینی ها یه میانجی بین دو خانواده هست مأموریت داد تا همسر مناسبی برای دخترش پیدا کنه. شانگ پیر وقتی این موضوع شنید خیلی خوشحال شد و فوراً غذا و نوشیدنی تدارک دید و دلال ازدواج رو به خونش دعوت کرد و از اون خواست تا اونو بنوان همسر مناسب با آقای سونگ پیشنهاد کنه اما دلال اسبانی شد و گفت آشان تو چطور به خودت اجازه میدی از دختر آقای سونگ که صاحب مقامی آلیرتبه است کاری کنی ها تو هم پیری و سنی ازت گذشته و هم, هم یه باقبون ساده ای واقعا که عقل تو از دست دادی دلال ازدواج اینو گفت و با عصبانیت در حالی که زیر لب قرنت میکرد خونی شنگ پیر رو ترک کرد روز بعد. شانگ پیر دوباره از دلال ازدواج برای شام دعوت کرد و به اون پول داد دلال این بار هم گفت شانگ عزیز چرا متوجه نیستی مرد که از من چی میخوای؟ چرا باید دختری که پدرش صاحب مقام و مرتبه بالاییه بیاد زنه پیر مرد بشه؟ تا اگه پولم داشته باشی؟ موهای سفیده با موهای سیای اونجور در نمیاد نه نه نه نه چون این استواجی محاله دیگه حرفشو نزن امکان نداره شانگ اما شانگ پیر دست بردار نبود که نبود و ملتمسانه گفت خواهش میکنم فقط یه بار سعی کن و منو با آقای سنگ و دخترش معرفی کن اگه اگه خبول نکردن اون وقت من دیگه هیچ وقت درباره بارش حتی فکر هم نمی‌کنم قول میدم در لال ازدواج چون پولو از شانگ پیر گرفته بود دیگه نمیتونست درخواستش رد کنه با وجود اینکه حراس داشت از طرف آقای سانگ مورد خشم و سرزنش قرار بگیره دل به دریا زد و پیشنهاد پیرمرد و با آقای سانگ در میون گذاشت آقای سنگ از چنین پیشنهادی سخت براش شد و خواست دلال ازدواج رو از خونش بیرون کنه اما دلال ازدواج اونو به آرامش دعوت کرد و گفت قربان من میدونستم که شما از چون این پیشنهادی عصبانی میشین، ولی باور کنین این پیر مرد من مجبور کرد تا خواستش رو به شما منتقل کنم آقای سنگ که کمی آرومتر شده بود با تمسخر گفت <تصفيق> به این پیر مرد بگو اگه برای من دو سنگ یاغوت و چهار صد سکه طلا بیاره <تصفيق> حتما دخترمو اون میدم و بعد قاه قاه خندید و ادامه داد <تصفيق> پیر مرد خوش اشتها حالا تا آخر عمر برای دو سنگ یاقوت و چهار صد سکه ی تلا باید سک دو بزنه بله آقای سون این پیرمرد دست بندازه و رو به سخره بگیره چون میدونست پیرمرد هیچ وقت نمیتونه دو سنگ یاقوت و چهار صد سکه ی تلا رو به دست میره یال ازدواج به سراغ شنگ پیر رفت و پیام آقای سونگ و به اون داد پیرمرد هیچ مخالفتی نکرد و ظرف چند روز دو سنگ یاقوت و چهارصد سکه طلا رو آماده کرد و به طرف خونه آقای سونگ برافتاد آقای سونگ و همسرش وقتی دیدن شانگ پیر واقعا خواسته اونا رو برآورده کرده سخت هراسان شدند ولی دختر اونا رو دلداری داده گفت پدر تو قول داده بودی و حالا نباید زیر قولت بزنی خواهش میکنم نگران منم نباشید من خودم میدونم جوری سرنوشتم و رقم بزنم بعد از ساعتی قول و قرار عروسی و گذاشتن و چند روز بعد دختر آقای سنگ با شانگ پیر ازدواج کرد پیرمرد بعد از عروسی هم دست از باغ نکشید اون زمین رو بیل میزد و مثل گذشت سبزی میکاشت و اونا رو میفروخت همسرش هم مجبور بود آب بیاره یا آتیش آشپسخونه رو خودش روشن کنه روزی یکی از خویشاوندان ثروتمند آقای سنگ به دیدن اونها رفت و به آقای سونگ گفت آیا شوهر بهتری سراغ نداشتی که دخترتو ببون بدی؟ ها؟ چرا باید تنها دخترتو به یه پیر مرد باغبون بدی؟ <تصفح> تو با این کار آبروی فامیل و اقوام ما رو بردی حالا که اینطوره باید به اونا بگی که چه زودتر این دوستارو ترک کنن و به جای دیگه ای برن فردای اون روز آقای سنگ میهمانی کوچکی ترتیب داد و دخترش شانگ پیر و دعوت کرد وقتی اونها به اندازه کافی خوردند و نوشیدن آقای سنگ به اونها گفت بهتره از اینجا برن و در جای دیگه ای زندگی کنن شنگ پیر گفت من فقط به این خاطر اینجا موندم که فکر می تو دوست داری دخترت کنارت باشه باش. اما حالا که اینطوره خوشحال میشم که از اینجا برم من خونه یه کوچکی در بالای تپه دارم و ما فردا صبح زود به اونجا نقل مکان میکنیم فردا صبح زود شانگ پیر با همسرش برای خداحافظی پیش آقای سونگ رفتن آقای سونگ گفت: من برای گرفتن خبرگاهی پسرم و پیش شما میفرستم. شنگ پیر همسرش و سوار بر الاغ کرد و کلاهی هسیری به اون داد و کلاه خودش رو هم بر سرش گذاشت و به راه افتادن چند سال بدون اینکه خبری از شنگ پیر و همسرش با آقای سنگ برسه سپری شد آقای سنگ و همسرش که آرزوی دیدار دخترشون رو داشتن پسرشون رو به سراغ شنگ پیر فرستادند تا از اونها خبری بگیره پسر وقتی به تپه ها رسید پسر جوان دید که با دو گاو زمین رو شخ میزنه. جلوتر رفت و ازش پرسید پسر جون خونه شنگ پیر کجاست؟ پسر جوون دست از کار کشید و گفت ما مدت زیادی بود که منتظر شما بودیم قربان. دهکده از اینجا خیلی دور نیست. من راه رو به شما نشون میدم. و بعد از پسر خواست که بدون مالش به راه بیفته. اونا رفتند و رفتند تا به دهکده رسیدند در کنار دهکده نهری پر از آب زلال و گوارا جریان داشت اونا از روی پلیسنگی عبور کردند و به دروازه رسیدن اونجا گلها و درختان زیادی به چشم خورد و درناها در آسمون پرواز میکردند. صدای ساز آواز از فاصلهی دور به گوش می‌رسید جلوتر که رفتن به مأموری برخوردن که لباس صورتی به داشت و نگهبان در بود مأمور بونها اجازه ورود به تالار بزرگ رو داد عطر عجیبی هوا رو پر کرده بود دو پیشخدمت در حالی که دو ردیف از دختران زیبا اونها را همراهی می‌کردند برای خوشامدگویی جلو آمدند بعد از چند دقیقه مردی که لباس و دمپایی قرمزی پوشیده بود دو اونها نزدیک شد و به مهمون جوان سلام کرد پسر در نظر اول اونو به جا نیورد اما وقتی با دقت بیشتری نگاه کرد متوجه شد که اون مرد شانگ پیره پیرمرد با لبخندی گفت خوشحالم خوشحالم که طولانی بودن راه مانه از این نشد که شما به دیدن خواهرتون نیاین خیلی خوش اومدین حتما از دیدن شما خوشحال میشه بعد از مدتی پیش خدمت پسر رو به اتاقی پیش خواهرش برد ستونهای اتاق خواهرش از چوب صندل بود در و پنجره ها از یشم آبی ساخته شده بود. پرده ها از رشته های مروارید بافته شده بودند و خواهرش لباس زیبایی بر تن داشت. پسر با هیجان و خوشحالی به طرف خواهرش دوید. اونا چند ساعتی با هم به گفتگو پرداختن و بعد از صرف غذا در اتاقی مجلل، خواهر اتاقی رو برای برادرش آماده کرد و به برادرش گفت: بهتر کمی استراحت کنی، راه زیادی اومدی و حتما خسته ای من و همسرم برای گشت در کوهستان پریان تو رو تنها میذاریم و تا غروب آفتاب برمیگردیم تو میتونی تا بازگشت ما حسابی استراحت کنی پسر چیزی نگفت و دید که شانگ پیر بر اجدهایی سوار شد در حالی که همسرش سوار بر ققنوس بود و خدمتکارانشون سوار بر دورنا همه به هوا بلند شدند و به سمت شرق پرواز کردند گام غروب شانگ پیر و همسرش به اتفاق خدمتکارانشون برگشتند. شانگ پیر و همسرش به پسر گفتن تو نمیتونی بیش از این اینجا بمونی فردا تو رو راهی میکنیم تا به خونه برگردی روز بعد وقتی پسر میخواست اونا رو ترک کنه شانگ پیر هشت سکه یه تلا و یک کلاه حسیری قدیمی به اون داد و گفت بگیر بگیر پسر ممکنه به پول احتیاج داشته باشی تو میتونی به شهر یانگو بری و در اطراف شمال شهر سراغ داروخونه وانگ پیر رو بگیری اونجا میتونی ده هزار قطعه مس از اون بگیری این کلاه برای گرفتن اوناست. است پسر کلاه حسیدی قدیمی و گرفت و راه افتاد پسر به یانگشو رفت و سراغ وانگ پیر رو گرفت پیرمرد در مغازش بود و داروهای گیاهی رو با هم ترکیب کرد. وقتی پسر ماجرا رو براش تعریف کرد وانگ پیر گفت پول تاماد است اما میشه یه نگاهی به اون کلاه اصیلی بندازم من باید مطمئن بشم که اون کلاه اصله پسر گفت بله بله البته بفرمایید و کلاه حسیری قدیمی رو به وانگ پیر داد. وانگ پیر کلاه رو زیر رو کرد و با دقت به اون چشم دوخت در این موقع دختر جوونی از اتاقی بیرون اومد گفت من خودم این کلاه رو برای شانگ پیر دوختم. بعد خطاب به وانگ پیر گفت پدرچن نگاه کنین ببینین نخ قرمزی توی اون هست یا نه؟ وانگ همطوری که به کلاه نگام کرد نخ قرمز رو توی کلاه دید و سری تکون داد و گفت بله بله اینم نخ قرمز این کلاه اصل اصله بعد بلند شد و رفت و ده هزار تکه مص به پسر داد پسر زیر لب با خودش گفت: من مطمئنم من مطمئنم که شنگ پیر واقعا مقدسه من من باید یه بار دیگه به دیدنمون برم و فورا از وانگ پیر و دخترش خداحافظی کرد و به بالای تپه جایی که شنگ پیر خونه داشت رد پسر به بالای تپه که رسید اثری از خونه شنگ پیر ندید از جنگلبانی که از اون حوالی میگذشت سراغ شنگ پیر رو گرفت ولی جنگلبان چیزی در این باره نمیدونست پسر با ناراحتی و تعجب دوباره به نزد وانگ برگشت اما با تعجب دید که وانگ پیر و دخترش هم ناپدید شدن پسر سخت به فکر فرو رفت اون نمیدونست که همه این ماجرا رو یا بوده یا واقعیت شاید هم یه اون چاره ای نداشت که به نزد پدر و مادرش برگرده و تموم اون چه که دیده برای اونها بازگو کنه پدر و مادر پسر هم فکر کردن شانگ پیرمردی مردی مقدسه یا همه ماجرا معجزه و جادوه سال بعد پسر جوان یه بار دیگه تصمیم گرفت به یانگ شو بره اون نزدیک چمنزاری نزدیک شهر را میرفت که در اونجا به طور اتفاقی پسر شخزن شانگ پیر رو دید پسر شانگ پیر با هیجان فریاد زد سلام سلام چه خوب شد که شما رو دیدن سلام پسر از این حرف پسر شانگ پیر متعجب شد پسر شنگ پیر گفت بانوی من دستور داد که مقداری تلا رو به شما بدم و بعد رفت و با مقداری تلا برگشت و اونا رو به پسر داد پسر با تعجب پرسید شنگ پیر، شنگ پیر کجاست پسر شنگ پیر گفت پدرم الان توی مهمونسرا با وانگ پیر در حال نوشیدن چای و دمنوش های گیاهیه پسر تا اینو شنید با خوشحالی گفت چه خوب من میخوام شانگ پیر رو ملاقات کنم میشه شما منو به نصیشون ببرید؟ پسر شانگ پیر آرون گفت البته البته به دنبال من بیا پسر شانگ پیر برا افتاد و پسر جوان هم به دنبالش روانه شد اما وقتی به مهمون سرا رسیدن کسی اونجا نبود که نبود پسر جوون برگشت که چیزی به پسر شانگ پیر بگه اما کسی اونجا نبود پسر شانگ پیر هم ناپدید شده بود از اون به بعد کسی درباره شانگ پیر چیزی نشنید و پسر جوون هنوز نمیدونست دونست که دیده رؤیا بوده یا حقیقت و شاید معجزه و مدام از خودش می آیا آیا شانگ پیر؟ یم هر دو بود. شهدید افسانه از سرزمین چین بود به نام افسانه شنگ پیر گرفته از کتاب افسانه های مردم چین گردآوری فردریک اچ مارتینز ترجمه عرفان حسنزاده. زاده افسانه های ملل مختلف به روشنی نماینگر ویژگی های ملی و قومی مردمه که از اونها از طبیعت شیوه انتخاب پوشاک آداب و رسوم و سنت هاشون سخن به میون میاد افسانه های ملل مختلف با انگیشه ها باورها و آرزوهای مردمان هر سرزمین پیوند داره و ریشه اونها رو میشه در فرهنگ و عقاید و سنن مردمان هر سرزمین جستجو کرد. ازار افسان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سابق وی ویراستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی صدابردار راهلی قفاری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانهای دیگر بدرون